سلام دوستان همراه کانال هزار افزان. امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصات ذکر شد داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام دوشیزهی با کلاه چوبی سالها پیش تو دهکدهی تو ژاپن زن و شوهری زندگی میکردن اونا سالها کنار هم با شادی و سعادتمندی عمر گذروندن اما روزای بعد از راه رسید و سرانجام هرچی داشتن از دست دادن به جز دخترشون که به زیبایی ماه بود. اونا همسایه های مهربونی داشتن و هر کاری از دستشون برمیومد برای همسایه های خودشون میکردن. اما زوج مونده در این فکر بودند که به جای دیگه ای برن. پس یه روز براه افتادن تا جایی دیگه از سرزمین خود زندگی کنند. مادر و دختر به کارای منزل می رسیدن و از باغچه مراقبت می کردن. مرد گوشه ایمی نشست و به جلو ظلمی میزد و همیشه به فکر ثروتی بود که روزی به دستش برسه. اون روز به روز درمونده تر می شد تا اینکه تو بستر افتاد و دیگه از جاش بلند نشد. همسر و دخترش در غم از دست دادن اون به تلخی گریستن و چند ماهی طول کشید تا حال و روز خوشی پیدا کند. یه روز صبح چشم مادر ناگهان به دخترش افتاد و دید که اون بزرگ و بسیار زیباتر از قبل شده. با دیدن دختر شادی تمام وجودش فرا گرفت. اما وقتی دید تنها از تن و کسی رو ندارن، از ترس اینکه آسیبی به اونا برسه به هراس افتاد. پس مثل مادری خوب تصمیم گرفت تا اون چرا میدونه به دخترش بیاموزه و طوری بارش بیاره که همیشه درگیر کار باشه. در این صورت وقت فکر کردن درباره خودش نخواهد داشت. البته دختر هم فرزند خوبی بود و به حرفهای مادرش با دقت گوش میداد. سالها گذشت سرانجام توی روز بارونی بهاری مادر سرما خورد. ابتدا توجهی به بیماریش نکرد اما با گذشت زمان حالش بدتر شد احساس میکرد که زمان زیادی زنده نخواهد ماند. پس دخترشو صدا کرد و گفت که به زودی تو این جهان تنها میشه و باید از خودش به خوبی مراقبت کنه چون که دیگه کسی نیست که مواظبش باشه از اونجا که زنای زیبارو موقعی که از جایی رد میشن توجه دیگرانو به خود جلب میکنن مادر به دخترش گفت که از اتاق کناری یک کلاه چوبی بیاره بعد به اون گفت کلاهو به سرش بذاره و لبشو تا روی ابروها پایین بکشه طوری که صورتش زیر سایه لبه کلاه به وضوح دیده نشه دختر هرچی و مادر گفت انجام داد با این کار زیبایی چه زیر کلاه چوبی که موهاشو کاملا پوشونده بود پنهان شد. حالا با این سرووز میتونست به میان مردم بره و کسی هم نگاهش نکنه. مادر که خیالش راحت شد، در بستر دراز کشید و جان به جان داد. دختر چند روزی گریه و زاری کرد. گاهی فکر میکرد حالا که تنها شده بره کاری پیدا کنه و با در روزگار بگذرونه. کسی هم نبود که به اون بگه کجا بره. پس لباساشو تو بخشهی بست و راه افتاد. از تپه ها گذشت تا به خونه مردی رسید که مالک کشتزارهای وسیعی تو اون ناحیه بود. اونجا به اون کار داد. از صبح تا دیر وقت کار میکرد. هر شب موقعی که به بستر میرفت تا بخوابه قولی که به مادرش داده بود از یاد نمیبرد. حتی موقعی هم که هوا گرم بود، کلاه چوبی یا از سر بر نمی داشت. مردم هم به اون دقب حادشیهی دادند. با تمام مراقبتی که در پنهانسازی زیبایی چهرش می کرد، شهرت زیباییش همه جا پیچیده بود. بسیاری از جوونای بیتربیت و گستاخ که همه جای دنیا پیدا میشند، دوستکی پشت سرش حتی موقعی که سرگرم کار بود میستادن و سعی میکردن کلاه چوبی چوبیا از سرش بردارن دختر به اونا ناسزا نمی گفت و فقط از اونا می‌خواست که پی کارشون برن کاری از پسرا سر صحبت و با اون باز می‌کردند، اما اون پاسخی نمیداد و همچنان سرگرم کارش میشد حقوقش کم بود و غذاش کافی نبود با این حال از وضعش راضی بود. یه روز صاحب کارش برای سرکشی به مزرعه رفت. دختر که سخت سرگرم کار بود توجه اربابش جلب جلب کرد. ارباب از اون یکی دو سوال پرسید. بعد اونو به خونش برد و گفت چون همسرش بیماره اون کارای منزل و احددار بشه. از اون بعد دختر سرگرم خونداری شد و فکر میکرد که گرفتاریاش به پایان رسیده. اما روزگار انواع را تو آستین داره هنوز مدتی از خانهداری هاچی و پرستاری از زن بیمار نگذشته بود که پسر بزرگ خانواده از کیوتو به خونه بازگشت اون در کیوتو به فراگیری انواع فنون مشغول بود اون از زندگی شکوهمندانه سرگرمی های دلخوشانه کیوتو دلزده شده و از اینکه که به روستای سرسبز خودش و به میونه درختای پرش و گلای زیبا بازگشته بود بسیار خوشحال بود صبح زود موقعی که از خونه بیرون میرفت چشمش به دختر کلاه چوبی افتاد فورا نزد مادر رفت و پرسید اون دختر کیست؟ از کجا آمده و چرا اون کلاه عجیب و برسر داره؟ مادرش گفت که چیزی نمی دونه و کسی هم نتونسته اونو وادار سازه که کلاهش رو برداره. پسر جوان خندید اما فکرایی تو سر داشت. یه روز گرم وقتی به طرف خونه میرفت، چشمش به دختر زیبا افتاد. اون کنار جویباری که از مزرعه میگذشت نشسته بود و صورتش می میشست. کلاه چوبیا از سر برداشته و کناری گذاشته بود. پسر جوون از پشت درختی اونو زیر نظر گرفته بود و در یک نظر زیبایی چهرهش رو دید. همونجا به خودش گفت که اون بهترین همسر براش خواهد بود. وقتی با خاله واداش درباره تصمیم خودش برای ازدواج با دختر صحبت کرد، اونا بسیار عصبانی شدن و بدترین و زشتترین قصه ها رو درباره اون دختر گفتند. البته با این حرفا خودشونو به زحمت انداختند. چون که پسر میدونست که اون حرفها مشتی مشتیاب است با خود فکر کرد فقط باید روی خواستم پافشاری کنم بالاخره با من کنار میاد اون برای اون دختر همسر خوبی بود البته دختر جوان دلش نمیخواست که میونه اعضای خانواده دعوا در بگیره و از وضعی که پیش اومده ناراحت بود و در پنهان سخت گریه میکرد سرانجام. یه شب مادر به خوابش اومد و گفت که با پسر جوون ازدواج کنه. پسر جوون هر روز از اون خواستگاری میکرد و همواره با دیدنش تقاضای خود رو می میکرد. سرانجام دختر جواب مثبت داد و همین باعث تعجب و شادمانی پسر شد. پدر و مادر پسر متوجه شدن که بهتره موافقت کنن و نگذارن کار از این بدتر شد. اونا خود را برای برپایی جشن بزرگ آماده کردند. البته بعضی همسایه ها هنوز چرندیاتی پشت سر دختر کلاه چوبی می گفتن. اما دوماد به قدری خوشحال بود که به حرفاشون اعتنایی نمی کرد. وقتی همه چیز برای جشن آماده شد، داماد لباس نقردوزی زیبایی که تو ژاپن پوشیدن به تن کرد. عروسم با کلاه چوبی به سر به آرایشگاه برده شد، تا گیسوانش رو به بهترین شکل آرایش کنند. اما هرچی کردن تا کلاه چوبی و از سرش درارن نتونستن. چند نفر کلاهو به دست گرفتن و زور زدن که اونو بردارن. اما دختر بیچاره از شدت درد فریاد میزد. با شنیدن صدای جیغ اون دومات نزدش رفت و گفت ترجیح میده که عروس با کلاه بر سرش به عقد اون در بیاد. مراسم جشن برپا شد و عروس و دومات کنار هم نشستند. جام نوشیدنی و براشون آوردن و هر دو ای از آن نوشیدن. جام که خالی شد واقعی عجیب رخ داد. کلاه چوبی با صدایی بلند شکست و خوردههاش هاش زمین ریخت. اونا به تکه های پاشیده بر کف اتاق خیره شدند. روی زمین پوشیده از سنگای قیمتی بود. توجه مهمونات جلب شد. اما اونا از تماشای سنگای گرانبها ها شگفت زده نشدند چیزی که باعث شگفتی اونا شده بود زیبایی بی عروس بود که تا اون زمان را ندیده و نشنیده بودن. اونا شب را با آواز و پای به صبح رسندن. عروس و داماد به خانه خودشون رفتن و تا زمانی که زنده بودن همونجا زندگی کردند. اونا فرزندان زیادی داشتن که به خاطر نیک رفتاری و زیبایی در سراسر ژاپن زبان زد هستن سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها ماشره از جادوگر ها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 کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستانهای های سوتی صوتی